همچو بوتیمار مجروحی نشسته بر لب دریاچه یه شب می خورد اندوخ شامگاه اندیشناک و خسته و مغموم کاجهای پیر تاریکند و در اندیشه تاریک من غمین و خسته و اندیشناکم چون غروب شوم من چون چون پیر تاریکم که گوهی دیرگاهی هست تا خورشید بر جانم نتابیده است میکشم بی نقش در غمخانه خود پای میکشم بی وقت بر پیشانی خود دست ای پیغمبرهای سرگردان نیکی ای پیامبرهای بی تکفیر بی زنجیر بی شمشیر در گذرگاهی چنین از آفیت محجور بی کتابی اندران از دوزخی سوزان حکایت های خوفنگیز پرچم محزونتان را دور می بینم که باد افتاده باشد روزی اندر سینه مغرور زهر زهر رنج از ناتوانی های در دل چوبو تیمار بر لب دریاچه شب میخورم اندو آنچنان چون کاج پیری پرقبارم من که گویی دیرگاهی که از ابری نم نمی باران نباریده است میکشم کشم در غم خانه خود پای می کشم بیوقفه بر پیشانی خود دست